حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردایی روزه به تر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم اجماع که دلم پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که درب سبزه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حالا احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پس شماره 985 امروز شنبه 27 بهمن ماه 1394 با آخرین پاسوردهای زنده این هفته در خدمت شما هستیم. تأیید کننده برنامه جلال سعیدی بنده فلجید منافی در خدمت شما هستم به همراه علی، سعید، مهرسا، سامی، شهرام دیگه همین. دیگه کسی نبود؟ نبود؟ نه نیست. شده شده شده شده شده شده куби خوشین چه خبره آقا چقدر زود سه‌شنبه میشه تا می‌ریم تکون می‌خوریم برنامه هفتهمون تموم شده انگار همین یکی دو روز پیش بود شنبه بود گفتیم میخوایم در مورد هنر صحبت کنیم و گفتیم اول هفته از تو این ها نگو سه روز پیش بوده فکرو این عمر همینجور داره میگذره ها 15 تا برنامه بیشتر دیگه نموندا برنامه 985 یعنی چشمه هم بزنیم 15 تا هم تامو شده رفته و حالا حرفای ناراحت کننده نزنیم دیگه امروز در آخرین روزی که داریم با هم در مورد هنر صحبت می کنیم می خویم سری بزنیم به رابطه بین هنرمند و حکومت و ببینیم این رابطه چه شکلیه پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه اون هنرمندایی که به موقعش چهار و کراواتی و به موقشم با ریش و چفیه و خوش رخصی بلدن که چجوری خودشون رو تو دل مقامات جا بکنن یه روز مرد خدایی یه روز داخل ریایی یه روز مرد غنا یه روز آتن تایی یه روز آتش خشمی یه روز مصر مهری یه روز آشق عشقی یه روز جدایی یا یک رنگی و موندن به دل مهر رو نشوندن یا یک پرچگی ما، یا از ریش یه روز پاک و منعظم یه روز غرق گنای یه روز بلای ناگان یه روز پشت و پناهی یه روز احل نوازش یه روز دشمن سازش یه روز خاکی راهی یه روز قریب و سرکش یه روز احل نوازش یه روز دشمن سازش با کنش من به صلاح یا شرف معروف هنر نزد ایرانیان است و بعد این گونه است خود ستودن کمال بیهنریست و از هنرهای غیر بیخبری روزگاری وطن هنرها داشت این درخت کهن سمرها داشت چون اسیر سیاهکاران شد خاک میهن خرافه باران شد از هنرهای ناب ایرانی یافت کمتر شود به آسانی لیک بزره هنر هماره به جاست بارور کردنش به همت ماست دیر مام. زشت خرافر است دیو زشت خرافه از بنیاد برکنیم و هنر شود آزاد آرپینس از به پاخیز و با خرافه بجنگ تا بروید هنر به صدها رنگ با بله خیلی هم زیبا شنیدین پاشین که اگه هنر میخواین باید با خرافه ها بجنگین آورین آورین برو به <تصفيق> اصن ما هر چی فکر کردیم نفهمیدیم جریان این داستانهای تخیلی که در مورد بزرگان دینی بعضن گفته میشه چیه جدیه شوخیه یا اصلا کلا چیه الان به صحبته این حاجاقا لطفا گوش کنی فاطمه زهرا سلام الله علیها خوب جهیزه اون زمانون نشون دادن در حدی نبود که بتونه بیان بکنه فاطمه میاد اینجا مقام معنوی خودش رو میخواد دم. به علی نشون بده میگن این روسری که بر سر یه مقداری بالا بود نور پیشانی فاطمه فضای اتاق رو گرفت خوب علی علیه السلام هم در مقابل میگن که بیاد به اسطلاح از معنویت خودش هم نشون بده یه مقدار امامهش بالا گرفت نور پیشانی فاطمه نور پیشانی فا... بن نعبی طالب علی علیه السلام بب. نور پیشانی فاطمه رو تحت و شعا قرار داد خب یعنی چی الانین؟ یعنی دو نفر از معصومین شیعیان با هم کل کل نور گذاشتن؟ خواستن روی هم رو کم کنن حاج شما فیلم های علمی تخیلی زیاد میبینین نه ولکنم نیستم. نیستن ماشالله گوش کنین ببینین چندین بار این مسئله تکرار شد تا فاطمه میگن روسری از سرش برداشت آخو. امام میخواست ام. یه وقت پیغمبر خدا دست علی رو میگیرد میگهد علی جان دیگه امامه رو از سر بر ندار اگر برداری نور سر شما به عرش علا خواهد رفت فاطمه من در اینجا این یعنی واسه ترکوندن یک دین و یک مذهب نیازی به دشمن و استکبار جهانی و استعمار فلان فلان شده و اینا نیست به خدا نیست یعنی یه تعداد زیادی از این هاجا ها رو شما تکثیر کنیم بفرسین خاطر مردم بسه الان سوال اینه که از این فرمایش‌های ایشون قرار مردم متوجه چی بشن آقا جان که بزرگان دین مثلا کلاشون نورافکن بوده ولتاجشون بالا بوده یا اینکه چی شما این متوجه نکته این روایت شدین به ما بگین والا. چی بگین او ویه، ویه. من قسم یه خونار نه نشونت بدم. بفن. سه داد. دو دو بوز دو ز رفتم بوز دو دی یه دوزد دو بوز دو دو بوز دو ز دی دو دو دو بوز یه بوز دو دیدن یه به دو دو بوز دو بدو دو دو بوز دو گف من که یه دوزده دو دو بوز دو زدم دو دیدم شما که دو دو دو بوز یه بوز دو ز دید <تصفح> کسر است اتر. بال خیلی ممنونم. خیلی لطف کردین سخت واقعان. آلو اصلش من یه جور دیگه شنیده بودم شنیده بودم که یه دوز رفتن دو دوز رفتن پی دوزیدن بز یک دوز دو بز دوزید و دگر دوز یک بز دوز دو بز گفت به دوز یک بوز من دوز دو بز دزیدم دو دوز یک بز حالا سامی بگو سامی بگو نه تمرین بکنم نه تو بگو منم الان تمرین ندارم یکی بگه آقا من الی بگو ببینم نه نه دو دوز نه دقت کنید دو دوز رفتن پی دوزیدن بز یه دوز دو بز دوزید و دگر دوز یک بز اخه آقا بی خیال یه نمایی بود برها هنرمند بودن دوستمون خیلی متشکرم لطف کردیم <تص> راهپیمایی 22 بهمن برگزار شد هفته پیش تموم شد ولی هنوز داره از دل این تجمع پرشور و مردمی عکس ها و فیلم ها و خبرهای بدیعی میاد بیرون ماشاءالله الان این آقای خبرنگار که داره از حضور دشمن شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن گزارش تهیه میکنه رفته سراغ یک از کننده ها که با سبک منحصر به فردی مشغول زدن مشت محکم به پک و پوز امریکا گوش تو چی مشت تو دهن امریکا اموشت <تصفيق> <تصفيق> <مرگ. مرگ. تصفيق> دیوید دیوید یو دیوید دیوید یو اس ا دیوید کیاست آطورگ مگ مگ مگ دیوید مرگه پس خارجی مگ برام آمریکا میشه دیوید دیوید یو اس ا مایک برام آمریکا مگ برام آمریکا دیوید دیوید USA اس آ خب پدرشان من مجبوریم اگه همون فارسی شو بگو دیگه مرگ بر امریکایی ها مرگ بر آمریکا امریکایی راحت متوجه منظورت میشن آخه دیوید دیوید USA اس به خدا کار درست البته همیشون میکنن به جای نفرت پراکنی الان ببینید چقدر شادی پراکنی کردن چقدر خندیدیم بهتر نیست به جای مرگ بر این و مرگ بر اون گفتن بدیم. علا یه امریکای اینو بشنبه اصلا حس بدی پیدا نمیکنه چند وقتی که توی آمریکا هم میخوا شعار بدن میگن جفر جفر ایران جفر جفر ایران همیجوری دیوار بیعتمادی از به میره دشمنی هم کم کم کم میشه از به میره میشه میره اصلا ما هم شعار میدیم دیوید دیوید او از آ بگیم بچه ها دیوید دیوید او از آ دیوید دیوید او دیوید آ دیوی مشهد 18 درجه البته برعکس شما بالای صفر رو داریم سپری میکنیم و آفتاب بسیار لذت بخشی در مشهد هست جیزک لایکی الان 20 حالا جیزک بزنیم چیشی لایک؟ تو صداتون هم خیلی قشنگ بود خیلی ممنونم که جز جگر میدین به ما ان بتونیم جبران کنیم دیگه دوستان لطف دارم به ما دیگه آقا اما این هفته همش از هوای آفتابی و صاف گفتیم چشمش کردیم انگار از امروز توی یه بخشی از شرق و جنوب شرقی ایران بارش‌های فروکنده به شکل برف و بارون شروع شده تا فردا هم گفتن احتمالا ممکنه ادامه پیدا کنه این بارش‌ها به صورت رگبار و بارونه اما توی نواحی کوهستانی و سرتر به صورت برف خواهد بود البته دامنه این بارندگی ها محدود به کرمان و هرموزگان و بخشایی جنوب شرقی استان فارس و بعضی استان‌های های شمال شرقی ایران میشه تو باقی مناطق ایران همچنان آسمان آبی و صاف و در شرهای بزرگتر البته آسمان دودی و خاکستری خواهد بود خلاصه گفتیم که در جریان باشیم و اما امروز میخوایم بریم سراغ هنر و حکومت از درباریان و بیت نشینان هنرمند تا هنرمندان ارزان فروش بیانی یک شماره 985 بدانید و آگاه باشید که بعضی از هنرمندان از راه فروختن هنرشان به ها چنان میخورند که شما با لگد و زربات بیل و نصار کردن بد و بیر هم نمیتوانید آنها را از این راه بخور بخور منحرف نمایید پس همانا در این راه بهترین درمان پیشگیری از افتادن به این ورته است چون اگر مزه این لغمه های چرب زیر زبان کسی رفت دیگر با ریختن زهر حلا هل و فلفل قرمز در حلق هم نمی شود مسیر او را عوض کرد امزاو از چرب و نرمی بعضی لغمه های رسیده به هنرمندان حکومتی چربی خونشون بالا رفته های رادیو پس بیاه سلام راجب سوال برنامه که هنر نزد ایرانیان است و بس چی بگم والما ما همه چیزمون حتی زبان سلامون هم دیگه نجات پرستی داره میشه آخیش چه ذربماصلیه این چه حرفی هستن شما هر جای دنیا برو برو چین هنر می‌بینی برو فرانسه هنر می‌بینی تو آمریکا تو اروپا تو آفریقا تو قاره اقیانوسیه هم که بری تمدن بوده داشته باشه شما می‌بینی هنر می‌بینی این حرف نظر من حرف درستی نیست که هنر نزده ایرانیان از تو بس محسنم هست خوارم و بس نه محسنجا نگوی نرف چرفی هنر فقط نزد ایرانیان از تو بس ای زبون تو گاز بگیر یعنی چی کی گفتم چیزی رو فقط ایرانی هنر مندم. به خدا اما اگر خواستید با ما در تماس باشید میتونید با راه های ارتباطی رادیو پسوردو در ارتباط باشید که تلفن های ما هست دو420 دو و دو تلگراممون هم هستش عت بله. یعنی های خواستان چیزی به تلگرام اون بفرستن به حت بله. پسورد گرام بفرستن بله اکسی. هم هم این ای. سرشیزی هست و برمی تماس نگیرن همین میرسه دست ما ما چک میکنیم به خود زنگ نزن. چرا زنگ میزنی نصف, نصف شب چرا شب. زنگ میزنی اینه. چرا فکر میکنین ما الان ور میداریم میگیم الو را دیو پسورد واقعا فکر میکنین <تصفح> <تصفح> خیلی متشکرم. با حرفای ساده آشغترم کردی تنها کسی بودی که باورم کردی پیش تو من انگاه یه آدم دیگه تو تر از هر می چی میگم فهمیدی قلب من از دنیا چی میخوا آخر تو تنهایی دستات جا تم داد تا وقتی که حسمت کنار اسمم هست دیگه مونیشی پایانه این قصه هست تو عاشقم کردی اینو همه دیدن حالا همه دنیا حالا موفق میدن تو عاشقم کردی تا دیدی دیوونم دی دی فهمیده بودی من بی درخوان خانم آقا پسرا از قدیم و لیام همیشه هنرمند و حکومت یه رابطه عاطفی پیچیده با هم داشتند. هنرمند به حمایت و امکانات و پول حکومت نیاز داشته. حاکمان هم به هنرمند نیاز داشتند تا با هنر اون چهره خودشون رو یکم بذل کنن و چند تا نقاشی و تمثال از شمایل مبارکشون کشیده بشه و تو سایزهای مختلف مجسمه از خودشون بسازن برای نسلهای بعدی یادگار بذارن و در قالب شعرها و حکایت‌های هنرمندانه ازشون تجلیل بشه و خلاصه‌ کیف کنن. یعنی توی این رابطه هر کدوم از طرفین دنبال چیزایی بودن که نداشتن. هنرمند دنبال پول بود حکومت هم دنبال تایید و تحسین و افتقار و اینجور چیزا هلانه هم خب و بیش اوضاع همین جوریه و یک سری از هنرمندا سوراخ رو گیر آوردن با تاسمودن خودشون به حکومت دارن کیف دنیا رو میکنن ما اسم نمیبریم ها درست هم نیست اسم ببریم ولی شکر خدا هم فیلمساز و بازیگر داریم که شبانه روز توی مجالس حکومتی میلولن هم شاعر و نویسنده و ترانه خون البته این جوری هم نیست که هر هنرمندی بخواد برسه سمت حکومت حاکم حاکمیت بهش بگه خیلی خوش و نمیدونم قدمت سر چه شو بپر ما بالا مجلس رو دم در بعد حرفها. بعضی هم اصلا شانس ندارن تو برقراری رابطه با حکومت واقعا هم از دل و جون مایه میذارن آ. ولی خب جور نمیشه دیگه انگار میدونی یه جوری مهرشون به دل حکومت نمیافته یعنی این جور عش های یه طرفر آدم می‌بینه، اصلاً اصلا جگرش کباب میش آتیش میگیره اصلا یه حالی به آدم دست میده یه حال تطلوی میشه یه جوری که اصلا بقبق هم ممکنه را بیفته اصلا کلن. یه جوری تو مای های بغق تخلی. Musala memos, Musala memos, Galije, Musala memos, Musala memos, Inha de, Musala memos, Musala memos, Galije, Musala memos, Musala جسمه بعضی از این هنرمندان بر پول چک کارای میکنن و شوهر عتی یکی از همکارای شرکتمون فیلم سازه امروز وقت ناهار عتیش با آبود. داب تعریف میکرد که شوهرش داره تیزر انتخاباتی میسازه سازه های ویژه‌ام داره خوب حال و تو جشماری ک که فیلم ن ساخته تو همانقدر پذ میدی. یه انتخابات مجلسه دیگه گفت نه خیر برای یکی از کاندید های خوبگان داره تیزر می‌سازه سازه کاندیدایم چون سنش خیلی بالاست نمیتونستن به برنش لوکیشن مختلف همه صحنه‌ها رو کار خودش گرفتن با جدوه های ویژه کاری کردن که وقتی تیزر رو می فکر می‌کنی وسط یه جمعیت زیادی داره سخنرانی می‌کنه یا داری یه پروژه بزرگ رو افتطعاق میکنه تازه میکان یک کم صداشو doubleبله کنن چون یه جایی خیلی واضه حرف نمیزنه. من ببین اسم این کاندیدای چیه گفت وا چیکار داری گفتم هیچی فقط به شوهرت بگو این نونا خوردن نداره ها گفت ایش آقا فرجی چک احوال شما اون که میگن براید. هنر نزد ایرانیان, ایرانیان است و این درسته درسو بخش آلمانی شد ما می‌ویم آلمان درس بخونیم دکترا بگیریم هیچی آقا رقاس شدی <laughs> فکر کن برید آلمان درس بخونی و دکتر بشی رقاس بشی برگردی با حالا فکر کن برمیگرده وطن پدر و مادر چشم انتظار بعد پسرشون میاد اینجوری اینجایش که فقط ضربه موقعش که از اینا از اینا یک دو سه جار بالا دو سه آها، خیلی دو آها سه خیلی هم خوب آقا دمت گرم کار دارستو شما کردی خیلی هم قچنی بود باشه چون هنرمندی داریم نمایی بابا وقتی میریم مجلس عروسی پارتیس بکشینین مال قطاره آقا از اون اول تا آخر میخوای برقصی برقص ولی وقتی مثلا عروس و دو ما دارن رقص دو نفره میکنن شما بشین وقتی یه نفر داره رقص تک بابا کرم میکنه یا رقص تک عربی میکنه شما بشین, بشین. این فیلم عروس یه مردم یک عمر میخواد براشون بمونه عزیز دل میخواد بمونه درود بعد تهیه کننده محترم برنامه که خدمتشون خیلی ارادت داریم قربان صدای ما را اگه میشه لطف بفرمایید پخش کنید تشکر میکنم. بله این از آشنای جلال بودا این از جلال روزایی که کنند است میگه همه فگ و فامیل و رفیق و رفقا هر کی هست همه زنگ بزنن صداشون رو پخش میکنه. کی بود جلال پسر خالت بود دکتر خالم بودن آ دکتر خالم قشنگ کی بود <تصفح> خیلی ممنونم از تماس شما صدای تایکننده دل شنیدین چه قشنگ بود فریبرز غریب سلام سلام سلام به همگی فرشی اونی که اومده بود آلمان دکتر بشه اونجوری شده بود ترچمه ما رو برد با بالا آخره ب... اونجوری نشده بود رقاص شده بود اونجوری ا... امون... آره یه جوری یه جوری گفتی اونجوری شده بود چون ممکنه خیلی جورایی بشه ولی <تصحنت> رقاص شده بود <تصحنت> چه خبره تو فوتبال فریبرز مدیر تیم ملی هم که استفاده داد آره فارسی یه شوک دیگه بود به این فوتبال پر از حاشیه یه روز راحت واقعا نوشتن واسه این هوادار هفته پیش اسفای کرشش داشتیم امروزم اسفای پیروانی مدیر تیم ملی رو تو این فوتبال نیمه جون هیچکی با هیچی خوب نیست به قول عادل خروسی که تو نقد دیشب گفت گوش بدین به این حرف عادل لطفا گوش کنیم. تو فدراسیون نظر میسه همه با هم بده یعنی از رئیس با دبیر کل بده دبیر کل با سرمربی تیم ملی بده همه با هم بدن این مجزا جزایریکه همه یکی عادی اون میزنه کله اون میزنه خیلی بلبشوه است این اتفاقات بعد خود وزارت ورزشان قطعا با فدراسیون خوب نیست و در واقع برعکس فدراسیون هم خوب نیست با وزارت اینو همش زنجیروار باعث شده تیم هم چنین وضعیتی بشه به قول شما الان آبرویی بشه تیم چند 20 روز دیگه بازی اردو داره لباس نداره خیلی بده کووالد تیم ملی چی میشه فریبوس همین به دو تا بازی مهم داره فرشید به فروردین فرین پنجم و دهم ده تو انتخابی جمع جهانی با هند و امان الان هم که فدراسیون به فکر انتخابات همششون رفتن گل بچیدن تین ملی هم سر و ساعت نداره بناره. بله دیگه از این بهتر نمیشه دیگه. خب دیگه چه خبر یه صاحره با بامزه کرده اسخر هااجرو بازی کنه اسق استغال تین ملی یه جایی که به درد برنامه این ما میخوره. عدم حضور هواداران پرسپولیس و استقلال تو ورزشگاه ها رو یه جوری بنونه سنگک تشویق کرده گفته فرض کنید شما آبگوش تو سفره داریم ولی نونه سنگک توش نباشه آیا آبگوش به شما می‌خزه خب این این مسئله خب به برنامه استیک مربوط میشه ما توش دخالت نمیکنیم نمیکنیم نمی می‌ذاریم تو اون بخش دیگه حالا ببینیم چه اتفاقی میفته در جبهه آبگوش و سنگک خبر آخرم بده که بریم تو شنبه یه خبر خارجی فرشید اگه اجازه بدی پرونده ورزش هفته رو ببندم تو آرژانتین توی مسابقه فوتبال بعد از اینکه داور یه بازیکن رو اخراج میکنه بازیکن میره از تو ساک ورزشیش یه اسلحه در میاره تا گولشت لیکش میکنه به داور و داور بخت برگشتر هم به قصد میرسه یا خدا یا خ... اینجوری که دیگه فکر کنم داور ها دیگه جورت نکنن از اشتباه بکنن چه شوبت اصلا کارت قرمزو هست میکنن آره دیگه کارت قرمز که دیگه اصلا گلوله باران داره ممنونم متشکرم باد خدافظی میکنیم تا شنبه تا شنبه خدای نگه Within the ceiling hey, Ooh, baby, it's the ultimate feeling You got me lifted, feeling so gifted Sugar, how you get so sly با سلام 23 و سه شب را و خوشحالی از اینکه بالاخره وزارت کشور فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات را از شورای نگهبان دریافت کرد با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می پیوستن جورج بوش رئیس جمهور سابق به کمپین انتخاباتی برادرش جب بوش در کارولینای جنوبی با نظر کارشناسان که این جب در نهایت باید باباش یعنی اون یکی جورج بوش رو هم رو کنه تا یه تکونی بخوره تو رله بندی؟ موزه وزارت خارجی ایران با این مضبون که مسئله ی حسر به کشورها و یه خابرجی ربطی و سؤال ناظران که پس عربستان که می گفت ماجرای ادامه شیخ نمر مسئله داخلی خودشه چرا شما قبول نمی کردید پس؟ و از نظر آیت الله علم الهدا مبنی بر جاسوس نبودن موسوی و چرروی و معتقد بودن آنان به نظام و پرسش كارشناسان كه که حالا تازه اینا اینجوری بودن پنج سال تو حسرن ای جاسوس بودن چی کارشون میکردیم مهمترین سرخته های خبری سال گذشته را شامل می شدند این خبرها با همکارم بی سلام احمد توکلی نماینده مجلس با درج مطلبی در کانال تلگرام خود برای دوره اول مجلس شورای اسلامی اظهار دلتنگی کرد و در آن مجلس مسلحت ملی بسیار بالا بود بنا بر رعایت مسئله مشترک بود خیلی بیشتر از الان من نوستالژی مجلس اول را دارم تو من یک تو من با حالا فرق می کرد اقا ای آقای میکروفون تلا تومن یک تومن درسته آره با درسته های توکلی گفته ایشون سرشون تو حساب کتاب این چیزها رو هم من و تو بهتر میدونم شنگده بودیم ولی ام. تومن یک تومن دیگه خیلی زیاده خون بره بابا دیگه گیر داری با عرض پوزش ادامه ی خبر در همین رابطه یکی از کارشناسان امور مجلس کشور به خبرنگار ما گفت با وجود دلتنگی آقای توکلی برای مجلس اول باید این نکته را از نظر دور نداشت که خیلی از نمایندگان آن مجلس در حال حاضر از کشور فراری هستند و بعضی از آنها اگر پایشان به ایران برسد جبس با حکم های سنگین قضایی مواجه شوند و یفتود بهتر است وقتی برای چیزی دلتنگ می در نظر داشته باشیم که این دلتنگی چه عواقبی را با خود به همراه دارد پایان مشروع اخبار بله در گزارش های روزهای و اخیر خبرهایی از برخورد شدید مأموران شهرداری با دستفروشان در سطح شهر تهران منتشر شده است به همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر را به محل یکی از این درگیری ها فرستادیم تا از این رویداد برای شما گزارشی تقیی کنم همکار گرامی صدای بندن میشنوی بله همکاری گران الان در برابر ایستگاه متروی شادمان خب. در تهران هستم و شاهد یکی از خرابگیری های ماموران شهرداری با دست فروش که به شکل شدیدی در جریان هم کاری گرامی او ظاهرا حسابی درگیری اونجا هم کاری گرامی あれ بله بله هم گرامی باید بگم در جلوی این نشکان چه خب. می فروشک و ای بابا پیکا در حال کاشمی بودن که ناگهان دو تا ماشین شاسی بلند اومدن و خیلی درو شکلی با شوکر و باتوم حمله کردن به این دست فروشا کارا او یعنی از اول که اومدن بس. شروع کردن به زدن همونو یعنی هم کار گرامی. هم همسره گرامی اول شروع کردن به هم ریختن ساخت اون دست فروشا و برگردون کاری جوری که نصبه محبت رو گوجه پرنگی لحشده گرفته بود همکار گرمی او او او عجب با او خب به بعد چی شد همکار گرمی همکار گرمی بب... بعد دست فروش ها شروع کردن به خب. که خب اون موقع دیگه معمولا با شکر و با توبشون همده بودن همکار گرم. خب گرمی یا خدا مگه جنگ مگه خب همکار گرمی الان برامون بگو که الان در حال بس. حاضر وضعیت که چجوری اونجا آقا من به خدا دست. ای, ما ای خو خو. من ما خبرنگارم من طاقتشو ندارم الو الو همکار گرامی الو چی شده بگویم ببینم همکار یعنی نزن نزن من خبرنگارم الو چه خبره اونجا توضیح همکار گرامی، بشت بگو یه دقیقه باست من اومدم به میکروفون خبرنگار ما توییم میکنیم بهش بگو باستا ولی باب تاشک شما تا این دیگر و برنامه این دیگر خدا نگهدار چمفتی کسی روی نکردم اصلا جون شما از علام گرفته بذارم این شهر داری این حالی بشیم بدم نفذ کش اکران دره نه ای آیا هنوز هم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته اید؟ آیا فکر می کنید شرکت شما در انتخابات تأثیری در آینده شما نخواهد داشت؟ آیا برای این تصمیمگیری نیازمند کمک فکری هستید؟ ما به شما کمک می کنیم. توجیه انتخاب گستر. عزیزم تو تو انتخابات شرکت میکنی؟ چرا که نه؟ همین که دم انتخاب گشته شد به گیر نمیده خودش خیلی خوبه راست میگیا چطوری تونستی نکتهی به این سختی رو بفهمی؟ آخه با توجیه انتخاب گستر تماس گرفتم توجیه انتخاب گستر در خدمت شماست افاد. این شناسته همه من کو. قایمش کردم بسه چی اخیه هستیدم روز انتخابا بدنه من بری رای بدی دل دلبر شدی تو من که نمیخوام رای بدم اصلا مشاورین توجیه کردن انتخاب گستر به ام گفتن اینجوری با دلبری بادارت کنم رای بدی حالا بیا بگرد پیدا شد نکنین کارا رو با من افت با توجیهگران انتخاب گستر تماس بگیرید تا شما را با بهترین شکل توجیه نماییم توجیهگران انتخاب گستر توجیهگر همیشگی شما سلام با آخرین استیک این هفته در خدمت شما هستیم تشکر میکنیم از شما که گاز استیک رو گاز خودتون میدونید و ما رو از غذاهای خوشمزه و جذاب خودتون محروم نمی کنید به سرعت میریم سراغ شرکت کننده های استیک امشب با اولین شرکت کننده از بلوچستان स्वामी जी نما در بلوچستان چه آشپزی پیشرفت و خوبی داریم آقا ما نون خوشکر خودمون رو به قبدری و مور بریانه میپوشیم یه دیگه آب گرم میذاریم خانواده میشینی مثلا در منطقه جنوبی بلوچستان این نونای خوشگلمیذاریم تو آب گرم یا بولا میخوریم یه کیفی داره آقا این مزه داره یه دفعه شده امتحان بکن ببین چی میشه اورو ممنونم از شما شف سعید دوست عزیزم البته به نظر من هم سادگی غذا خیلی اون رو جذاب میکنه ولی این غذای ساده شما فکر کنم ادویه هم یه کمی احتیاج داشته باشه مرسی بله. چرا خوب نظر دادن هم کارو عزیزم من واقعا حرف ای ندارم که بزنم آقا چه نظرهای خوبی می‌بینید مخلصم جلال جا عالی کردن مرسی ما خیلی متشکرم به <تصفيق> کوردی سرهای ما با هم چاکرا مخلصم هم می‌کنن در برنامه بریم سراغ شرکت بعدی با سلام قضیه‌ای که امروز میخوام معرفی کنم اسمش است شیشلیک دلخسته برای درست کردنش یه قالب 200 گرمی کره قابلمه آب میکنی. هم دنده‌های گوسفند رو توش مغلطونی تا حسابی قطه بخوره هم 100 گرم جعفری رو با فلفل و پیاز فراوان اضافه می‌کنی بذاری تو یخچال هم دو شب بشه وقتی روز سوم گوشت رو درمیاری این گوشت‌ها از بس کره بخورش آنفته حسابی خسته رفتن منقل رو جرق می‌کنی رو کباب میکنی یک تکه هم بذاری یک زرد میشکنی وسط پلو با گوشت‌ها می‌ری بالا فقط یه قضا من باید به با دو قابلی صرف بشه که خستگی گوش بتنه دومنه با تشکر مازیار از کم برا بابا ممنونم مازیار جان شف شهرام شیشلی که اینجوری میشه اگه به جای دنده گوزفن ماهی سبور که خار زیاد داره کره بزنی تو تنور چی میشه ای بابا هم کاری درامه. این داره راجب شیشلی که حرف بزنید چرا اینش بخشوی ماهی سبور الان قضاشه من از ایشون میخوام قضای اصلی خوش بگه تا همه ببینن چی جدی میشه ایشون که الان اینجا نیست به نظر برد. من که قضاشون خیلی هم جذاب بود ببین ما با عنوان پرودیسر نباید شرکت کننده ها راه نمای اشتباه بکنیم بامو بودی؟ نگرفتان بامونی؟ با... ببینید با... آه... آقای شهرام شما واقعا کار ما رو دارید سخت میکنید با با... واقعا کار ما رو سخت میکنید بریم شرکت کننده یه آه... بعدی سلام کاکو فرشید کاکو من خواستم در مورد کلم پلوش ایرازی برای تو صحبت بکنم نگاه اول باید یه کلم یه هفت کلم مخصوص کلم پلو رو گیری بکنی و اشترشتش تو قشن روغن سرخش بکنی تلایی رنگشه بعد باید گوشت چرخی در برداری قشن روسته بارم همچنی بردش بدی این هم گلگله کوچولو درستش بکن تو روغن این هم قشن سرخش بکن بعد اصلا برنجت بفرزی برنجو که خوب پخ خاصه که بذاری دن بیاد یه سبزی مخصوصش بشون یه سبزی مخصوص کلمپلو بیر بذاری تو برنجو کلمو کفته ریز قلقلیو را میرن بذاری توش بذاری همچی یواش واش برای خودش حال بکنه دن بیاد موقعی که خوب پخ کشیدیش بذار کنار یه قاشق سالاد شیرازی بخوری حالش رو ببری من مجید هستم بچه شیرازم ولی از آلمان براتون وایس گذاشتم قربونت خدافظ شف جلال عزیزم شاعر درباره کلمپله شیرازی گفته که کلمپولو کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره هست کجا تا به کجا به به به گرامی من واقعا تحت تاثیر نکته سنجی شما قرار گرفتم و البته اون چال بذون. <تصفح> با هم بزنیم. ای برم. <تصفح> خب بریم ساباق شرکت کننده بعدی. نیا هوندا دفترشید. می ازی برنامه خدافزی میکنه و ازی برنامه کنارگیری میکنه چون میدونه یه سر قابل های پشت پرده هست. اینا باعث میشه قضا مو تری گرید. ازی استکمو خدافزی میکنه. بله از خدا خدافزی کردن شف مرسا نظرتون چیه؟ درسته عزیزم شما با این برخورد غیرهرفهی که با قابلمه های برنامه داشتی کار منو اساسا راحت کردی من با شما کار نمی به نظر ما این رفیقمون با این استعدادی که در کاکدن با قابلمه ها داشت حیف شد ما خودم بدون کمک اقام 6 تا قابلمه بهشون تقدیم می‌کنم کنم که راهشونو ادامه بدن بله خیلی ممنونم از پرودیویسر های برنامه تشکر می کنیم از شرکت کننده های عزیزمون و حالا هم به صدای دوستانی گوش می کنیم که به گاز استیک راه پیدا نکردن اما ما دوست داریم صداشون رو یک بار دیگه بشنویم. یه غذای خاص ناب دانشی واسه اونایی که مثل ما دانشی هنرن از بس مشغول کارن وقت پخت و پز ندارن. شما غذای لیوان اپ میریزید تو قابلمه؟ پس منم میپرم دم مغازه یه بسته محصول مورد نظر رو میخرم اشتباهی به بادمتونه گرمه است میجین گوز فرنجیم کلا نه تایبتی <تصوح> یکی طیبه تیهه <تصوح> و نواکه قرچگو ترپیزی تیخن و امجر میخوام اسمه یه قضا رو بگم ازش چیلی کردن. قضای مکسیکیه ما هم یه قضا داریم که اگه یه قاشق شباخاری جونت بارش در میره اسمیش هم جویدوقه غذای قضای, قضای تهرانیه اسمش هست نریسید و به همون اندازه اسمش لذیذ و نانازه ممنون از همگی. یک استیک دیگه هم تموم شد یادتون نره که غذاها و صداهای خوب شما با لحجه های قشنگتون بهترین خوراک رو برای استیک فراهم میکنن و از شما تا استیک فقط یک گاز فاصل است حکو با مشکوم برو هم باشم با بشننگ و بابار راهتو بر ماه رخسارت نشته قلبم کلمه کلمه نیزنه رودار و, پلمه پلمه رو و شیشه یه دل نازو که در انتظار یه تلنگه با سر او شد دلم او شد نمیدونم چی تو شد که همه ی رو و جونم بونه ای تو دارد لنگه لنگه سی فوشه ی چه با نازو زیده کنجه اپتو آرمه داره مرگ دل از واقع زلفت یه تلنگه درمدم گفتم یخیب کنم سوه با قلب سنگ دفاع گفتم ها ولی دل که سنگ دنگه من سبا یا پس سبا لوش میشم از قصه امم تا آمخته ای آتیشم امشب لخا هم دار دنگه گوش شیطون کر ما خدا الله و اجبر آفتا به عشق سمندر تا دیومد جنگ جنگ. بوش شیطون کرماشان لونو خدا سداریکن لون آفتاب اشک سمن دهر تا بی جنگ جنگه سلام فرشید به نظر من که میگم هنر نظر ایرانیان است بس فقط در مورد هنر فرش درسته طبق نقاشی، آشپزی و خیاطی و مدلینگ و مهندسی هم میکنم گروهی. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که بهترین هنری که یاد گرفتم هنر زندگیه. چون باعث میشه احساس خوشبختی کنم و تو سخت‌ترین شرایط لذت ها رو پیدا کنم. خوبه که هر آدم این کار رو برای خودش بکنه. کاتیا هستم از رشت. خیلی ممنونم مرسی از تموسیشو بهترین کیس بودین شما. ماشاءالله از هر انگشتتون یه هنر می‌ریزه. سامیجان، جان، دادی. دیدی همه رو دیگه همه چی داشتن همه چی تموم بودن دیگر. حواظش نبود سامی سامی جا این رو نگه تا بعد برنامه با دقت گوش کن ایشون همه چی تمام بود آخرین هفته ها شما باید یه جوری ما زنت بدیم من نمیدونم دیگه اما امروز داریم راجع به هنر و حکومت حرف میزنیم بعد از انقلاب یه سری از هنرمندا خود به خود رفتن توی لیست ممنوعه ها یه عده شون ممنوع کار شدن یه عده ممنوع تصویر شدن یه عده ممنوع صدا شدن یه تعدادیشون هم کلا ممنوع زندگی شدن و اینه که باروندیلو بعد سن رفتن خارج از ایران جمهوری اسلامی با چند دسته و گونه از هنرمند همیشه مشکل داشته دسته اول هنرمندی بوده که زن باشه خب از نظر آقایین بزرگترین هنر برای یک زن خونداری و شوهرداریه و کلن برای زن باقی هنرها تعریف نشده است اگر هم باشه دیگه در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داره برای همین بیشترین محدودیت ها بعد از انقلاب برای هنرمندای خانوم به وجود اومد و خیلی واخوننشین شدن و خیلیام کلا زدن بیرون از ایران یعنی شمایی ای توی ایران خانم هنرمند خوش صدایی هستی دو سه بیشتر نداری اگه قصد داری هنر تو جدی البته دنبال کنی یا بری تو این مجلس مولودی رو اینا بخونی یا حالا خیلی اگه تلاش کنی بری سراغ کنسرت گذاشتن برای خانوما یا اینکه از ایران بزنی بیرون به چه جرمی به جرم زن بودن اونم از نوع خوش صداش اینجوریست هست من Son sort of... yeah. خیراط خوبه بابا پسرم آه. با ما بگو که ما اینجا چه کار داریم میکنیم بابا از... ددی مدین نمایشگاه عکس دیگه عله. خیلی با کلاسه ها جواب میده خیلی عکس صدقه چه یعنی در آن عکس نمویا آره دیگه ددی این عکسو که زدم به دیوار همش مال اون خانم اسکه که اونجا داده نگو کن اونجا ده می چرا وقت را تلف میکنه پسرای هیفنان بریم ایشان شوندگ ددی بفر... زشته بابا عله. یه زهر هونه علی باز دیگه الان باید یکم یک به عکس‌ها دقت کنیم مثلا بعد بریم از عکس سوال کنیم در بدرشون حاج دمی فرمود این یعنی چه دقت می‌کنه بابا مثلا دردی ببین این عکس‌ها رو ببین اینا اینا کن چه این عکس‌ها یک سوره ابوذر گفتین چیزی زنی س... نه ببین عنوان عکس رو نوشته چای در کمی از بالا رفته عکس گرفتی واقعا فریم بهش چا بودی ددی چن حالا چه کار کنیم؟ چی بود گفت؟ هنری، هنری همون چجوری برش داریم؟ حالا بیاین یکیو ببین، یکیو بیا ببین، دادی ببین این, این چیه؟ شبیه یه چروک پیشانی مادر بزرگ ما یک نه این... بود <تصحفظا> دادی این رفته تو کویل بعد از این لایه های شنکس گرفته آه یعنی به مادر بزرگ ما رفتی نداره چی میگی دادی؟ نه اوه بیا حالا بریم به خانمه یکم حرف بزنیم دادی ایسایش خربت شده بی؟ مگم بد نباشه یه ما شما برایشان ای. را بیار خدمت ما ای دادین چه هستیه بابا ایشون را نالمنده بله بله. یادت نارو تیری پنری برداریم بله بله خیالت بله بله. راحت باشیم بریم بریم, بریم, بریم. توفضل توفضل السلام علیکم حال شما خوبه واقعا خیلی خوش اومدید خیلی ممنونم امیدوارم از کارای من خوشتون اومده باشه بله بله من و پدرم خیلی دوست داشتیم کاری شما رو کاری کرد که ما خوشمون بیایه یا نیایه اسفالم بن عادی بود سو جنا کن ما انسید اخس دیگه کلا شری ان ان شاء الله بله من با پدرم داشتیم کاراتون رو نگاه بله، بله میکردیم دستیم. و خیلی لذت بردیم از فوران تمه کبیر در کاراتون واقع بله جالب بود و وای چه که با کبیر ارتباط برقرار کردی آره خیلی ارتباط برقرار کردم تو پسینگاه پرسپکتیو این همه ما یک بله. کبیر هست ولی بله دقیقاً همینجوریه حالاش کردم اونو نشون بدم تو عکسام پسرم ان چی گفت زد. الان. داره. اون حرف بعد از فوش داد اون عادیه نادیات میزنه دیگه کم نید باید تو هم حرف بزنی یه چیزی بگو تیپو درید نره بیا بیا، خون بیاره. حالا من به بالا. حقیقتن در کارهای بین این وپسینگاه شما چیز دیگه تمایز و این روحانیت خاصی وجود داره که بحث, بحث چیز یا سیغه در آن نفته و مستطر و بله دیگه و وای جدی میفرمایید حاج آقا جدی بله من خیلی خوشحالم که حتی شما هم با این کار ارتباط برقرار کردید الان دیگه فکر کنم به ما فروش دادم نه ولی یه چیزی بگو بله. خودتم بفهمی چی بود ایشون پدرتونن بله بله پدر از بله. دانشمندان بزرگ علم روحانیت هستن چه زیبایی بله. هم دارن بله. بله. آدم احساس میکنه در وقتی حرف میزنن ولی بله حقیقتن هم زمانی گفتار شما به گونه‌ای که هیچ سیغی نمیتونه ای. اون را صرف بکنه بله. برای قلبم به تپش افتاد من شیفته حرف زدن و تیپ بخواست شما شدم بله. چقدر این طرز لباس پوشیدنت رو دوست دارم بله, بله. بله. البته من هم خیلی از بله. اکاسی سرم میشه به خصوص وقتی پای تونالیته رنگ میرسه اصلا غیر قابل مهار میشم اصن خاله اوه کاش کنار خدا تو باجا منو نولیتات رو نمیکنم فرو میکنم, میکنم. برا با... کنار ببینم و یعنی چی دادی چالنجی میباخود میکنی جلوی این حاج آقا بله بله. میتونم ازتون خواهش کنم با هم بریم تو دفتر نمایشگاه چای اه؟ بخوریم اه تفضل تفضل بریم که وقتن گوا مولز یادت بون بر ببینم سی وای چقدر خوب امیدوارم فقط چای سبز داشته باشین چ ما... کسی به شما بود مگه پسر شما برای ب... یه سری به ماشین بزن ببین یعنی... سر جاش هست یا نه برای ببینم ما کار داریم دادی... با خانوم چیز پرسپکتیو بی تاج آقا بفرمایی تفده فرمایید بله. دادی مایه بله. ما ماشین رویدیم اصلا خیلی نامردیم این پسن... از تو آدم فروشتر ندیده بودم حالا بهت میگم خوب... اه... خانوم چیز, چیز ب... برای ما بگو ببینم این همه پرسپکتیو رو تنهایی به دستا شما کمک کرده یا چیز شما نمیدونید من تنهاي چند شبانه روزو تو کبیر میگشتم برای پیدا کردن این پرسپیکتیف ها حاجه دی میفرمایی که خیلی حیفه که خب تشریف بیارید بریم چایی میل کنیم بفرمایید دل. دلنگرانی ما از خطاهی آدمیست که میخواد به چشم خود شاهده پیروزی باشن کامران ملکمتی سلام سلام فرش جان سلام همگی بزن بریم پرونده خبرهای هنری این هفته هم ببندیم بخشی جان امروز فیلم مسعد مادرکشی ساخته کمیل شوهانی بالاخره مجوز انتشار گرفت مادرکشی تو نهمین جشنواره سینما حقیقت جایزه بهترین پژوهش گرفت اما به خاطر موزهش افتاده بود تو دثانداز مجوز نمایش انتشار موضوع فیلم چی هست بخشی هست فیلم اسم فیلمو بعد من توضیح میدم که ماجرا چیه بشنبه. فدیده فرون فروشاست زمین اصطلاحا به عنوان آخرین مرحله از بیابانزایی یاد میشه وقتی این اتفاق افتاد دیگه کاریش نمیشه آری رئیس جمهور این به مسابهه یک هیولای بزرگ آب دشت های همدان رو خواهد کشید فاجعه هر چقدر بزرگتر باشه کمتر دیده میشه انگار گفت 120 صد, صد به وزارت نیرو تحویل کردند که بزن... بله بخشی از صدای فیلم مادرکشی ساخته کومیل شوهانی رو شنیدیم اینجوری که پداس موضوع در رابطه با بحران آب به کامرا در تو فیلم به ساخت سازی پیدال بی هم تو همینطور تری انقلابی عثمان محمود در رابطه با ریختن آب دری مازندران توی کویر دریچه ارومیه رو صحبت میشه فعلا سایت سینما مارکت برای خرید و دالود گذاشته این فیلم تا چند زاینده نسخه دیویدی هم تو بازار منتشر میشه بسیار ممنونم دیشب میدونم که جوایز گرمی هم توی لس آنجلس کلی مراسمش برگزار شد شنبه برامون راجع به گرمی هم فرصت نداریم امشب متاسفانه بود خدافظی میکنیم تا شنبه تا شنبه خود نگهتر. یک شنبهی که گذشت یعنی 25 بهمن سال روز کشته شدن محمد مختاری و سانه جاله توی اعتراضات سال 1389 بود دو جوونی که مثل خیلی دیگه برای رسوندن صدای اعتراضشون راهی خیابون های تهران شدن اما هیچ وقت به خونه بر نگشتن. اونایی که فریاد اعتراض محمد و سانع رو با گلوله پاسخ دادن شاید در اون لحظه نمیدونستند که یاد این دو جوون تو قلب و ذهن مردم ایران جاودانه میشه. محمد مختاری شاعر که خودش در سال 77 و در جریان قتل های زنجیری کشته شد جایی گفته دمی که یک کلمه هم زیادی است درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار سایه دستی است که می پندارد. دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد شبتون خوش حالم این روز حال خوبی نیست مثل حال اقابی پرواز شکل حال جکند بی لبخند مثل بول تار بی شهنا دود میشه کولومبیا هر روز بین نخبای پاکت لکنتم سخت میشه ترانی هر شب توی گیلاس سبز ابستم زندگی مثل بیخ دیواری توی تاریخ تلخ و تکراری با هر اسمی دوبار میمیرم دو محمد دوبار مختاری من سفر کردم از شدن